بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرین یاشت ولی از همه بدتر خب از همه بدتر چه بود؟ تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاحهای شیمیایی بود چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده می چون در جبه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. بله. اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را می‌بینی. عمو سعید مجروح شیمیایی است؟ بله. او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد. واقعا دردناک است؟ او همکنون در بیمارستان است ؟ بله، حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. او چه مشکلی دارد ؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد.